گر گل نبود نصیب ما خارینک، و نور به ما نمیرسد تارینک، و صبح و سجاده و شیخی نبود، ناغوس و کلیسیا و زنارینک. گرسول نیابم زفلک جنگینک، و نامنکون نباشدم ننگینک، جام می لعل لرغوان رنگینک، آن کس که نمیخورد سر و سنگینک. این صبح دمید و دامن شب شد چاک، برخیز و صبح گنچرایی غمناک، مینوش دلا که صبح بسیار دمد، او روی به ما کرده با ما روی به خاک. از آتش آخرت نمیداری داری باک، در آب ندامت نشدی هرگز پاک، چون باد عجل چراغ عمرت بکشد، ترسم که تو راز ننگ نفذیرت خاک.